أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المحسومين اللعنة دائمة على الذهاب المجمعين اللهم يعفقنا جميع المشترين الحمد برحمته يا رحمة الرحمة هل سوء مناسبتی وارد بحث که بحث ما هم نبود بون حلقه لحیه و دیه شهر رأس و لحیه و این مسائلی که آتن تو کتاب دیات مطرح میشه ما به خاطر تواعد تاریخی یا تواعد رجالی و حدید شناسی و نسخه شناسی وارد این بحث اینجا شدیم لو معلومی که جایی اینجا نیست و به همین مقدار محدود خود اونم بررکسی میکنیم وارد حکم و خصوصیات و حکم نمیشین چون این بحثی این سورت به نظر ما فوق العاده مهمه و فوق العاده تحصیل گذاره برای آشنایی با میراز ها این یک نقطه هم که خاندنات رو ارزو کنم چون اون مبنای فقرستی و حتی تا تا حدیم مبنای رجالی این فراموش نشه این رجالیون سابق یا نه که عمه بودن یا به اسطلاح بزرگان اینتن این فن بودن اینطور نبود که کنیم به چارت کتاب رجالی و قالفلان و الفلان اکتفا بکنند انها بیشتر حلا غیر از اینکه اونهای که, که بااشن معاشر بودن معاشر رو روایات و رو آثار آنها کار میکردند انها رو بررسی میکردن نسخه شناسی میکردن هدیث شناسی میکردند خودش رو, رو روی مجوعهیعن خودشونم رو صاحبنظر بودند فقیح بودند ملا بودند شواهد علمی رو نگاه میکردند از این یک نکته است که ما خیال نفهم مثلا رجال همینه که قال فلان سه قسم قال فلان مثلا نه این نیست کار درسته تمام این خصوصیات و بحث های کردن هست اینا یک دوره می‌دیدن و آشنا بودن و احادیث رو می و اصلا در ذهنیتشون ثابت بود حتی بین علمای شیعن فرصوی در قوم مثلا فرصوی کتار فلان به نصه فلان این معروف بود نصه و این نسخ رو با هم مقابله میکردن مقارنه میکردن گاه یه باگه زکس میکردن معروف بود که این نسخه مثلا فلان یا نسخه فلان غرض این نکات رو به دقت تا با ذرافت مخصوصی فکریم. بحثی که تا اینجا ما رسیدیم حالا دنبال اون بحث خود رو ادار بدیم هرس کردیم که دو تا مطلب از امیر در باب دی آمده که شواهد از اصحاب ما و حتی مترخیلی مثل ما خویی هم نشون میده که اینها رو دو تا مسئله فهمیدن ولی دا هم در یک قسمت ایش دو تا حکم کردن یه مسئله نفهمیدن یه واقعه نفهمیدن یک واقعه در لهیه بوده یک واقعه در موی سر و لحیه حالا موی مدن بوده و اثر آب جوش که روی سر شیخه شده هر دو به امير المؤمنين نسبت داده شده هر دو هم و ما آمدید چون روایتش یه مقدار خوندی از همینجا شروع کردیم تحقیق کردن روایات رو از هم جدا کردن روایاتی که در لهیت روایاتی که در لدیه و یا روایاتی که در موی صدر در روایت لهیه تا اینجا رسید که یک روایت واحد است که از امیر در مساجر ما به اصطلاح نقل شده مساره ما آمده از امیر مهمومین نقل شده که حضرت فرمودن به اینکه اگر در آمد اونم تویش من شلق آمده اگر در آمد یک سوم در نیامد دیه کامل که الب خب سنگین هم دیه کامل خیلی سنگینه چون معارفه که ریش تراشیم می‌کردن درمیاد درنیاد منظورم یه که مرضی بوده دیگه که عادی نیست که اگر پیش ببرمت درنیامد در اصلا مرضی خصوصیتی پیالدهای مضعیف شدن یه چیزی باز نیست دیگه متعارف نیست که مدرن با حلق روحی مدرنیات متعارف نیست اولا این فرض که درنیاد بذازه واقعی خیلی عجیبه هم این که اگر در هم یک سوم دیگه که مسئله سنگینه اصلا انگشت کسی رو بگیم 10 تا شطور یک دهمیه دو تا انگشت دو ده، سه تا انگشت سی تا شطور اینجا بگیم موی کسی رو تراشید ریشی کسی رو تراشید مونه ریشی کسی رو تراشید برایش و سه تا شطور بده خیلی عجولایی به میاد که از ده انگشت ریشم درآمد خیلی شادن در یک تعجبی می‌کنه خیلی مگر یک تعبد خیلی خوی باشه و عادتا با شواهد نمیخوره چین چی تعبدی این را به این دوباره حالا ما دنبال اول یکی این بعد اون مسئله ون همطور که قدما دوتاش کردن که من شوادهشم خوندم جروز ما دنبال این دو تا برگردم اما راجع به حلق لهیه تا که من دیدم البته استقتای کامل نکردم تو کتب ها ندیدم گفتن دیروز دارم که وی کتاب بدای اسنایه کاسانی آمده نشدم که لهیه است یا موه اون که در کتاب من دیدم موس فعر خصوص لحیه توش نمید لحیه رو از شره نره کردن اونم عمدش رسته حالا به هر حال ارز کردیم که روایتی که ما درباب لحیه داریم این بلاحاظ نکتش که به همین رومون نسبت داده شد عبارتی که از سکونی داریم اینطوره، طوره سکونی فی عبارت ما که داریم عبارت مرحوم شیخ صدوقه که سیگه هم از سکونی نقل نکردیم کلینی و مرحوم شیخ از سکونی نعمه کنی روایتش فی روایت سکونی این نعلی اللهیه این نعلی یا قضاق چیز به روایت نمیخوره این انجعفر انعبیه انعبایی توش نمیده احتمالا از همون کتاب و رضایه ها مستقیم نمیده به هر حال خوب دقیقه این روایت ما اون راهی رو که میگیریم پیش میگیریم در به اصلاح کتول وصوف یه مقدار از مقدماتش مبنید در موجود این میخواد صحیح باشه نباشه خوب دقت بکنیم نگید که مثلا این رو باید سنده زعیده میدونم سنده زعیده فبردادم نه یعنی یه راهیه که از کنی کلارم امروزه مثلا در حوزه دانشگاهی این مطلوبه یعنی این روی حساب میکنم حالا ما فضم واقعا تو کتاب ها قضای و س قطعه. یعنی ما اون فرض ضعیف رو مقبول بگیم زعیف تا این فرض یه جلیه خیلو این بحثیه حالا ما فرض قبول این روایت در سال سی و هفت سی و سال مثلا شست ظهور پیدا کرده بعد آمده تا یعنی این حکم یعنی از زبایت سکونی یا اون روایت اون هم از امیر تا زمان کلگی یعنی تا سال فرض سی سن. سی سن ده سال 3000 ما یک شواهد روشنی رفت بین این سال تا زمان امیر مؤمن بده نداریم. البته شما ارزش یه شواهد روشنی که بخواد رفت و عمده این از زمان کلی می بعد مشهور شده قبول داریم. این چه اینه شهرت شهرت ما همیشه عرض کردیم یه صغرا را هم پیدا بکنید. آیا واقعا شهرتی هست یا نیست؟ کلینی اگر رویت رویت به فتوا داده صدور هم که بهش فتوا داده مرحوم به سرا شیخ هم که به فتوا داده خون دید ولی این فتوا از اون زمان البته مرحوم شیخ مفید جور بگه فتوا داده که شا بعدش بردش اشاره ما دنبال این هستیم که آیا شواهد ما برای زمان کلینی با الموجود یعنی. تا زمان همینی و کافی هست یا نه سؤال دقیقا. شواهدی که داریم یک این مطلب در کتاب مصمه آمده که از خط بسرشیه اونجا کمن تنقیه نشده تصریح نشده تازه دو نفر ضعیف که که کشم متاسفانه مطمئن به کزورشو یعنی ما احتمال از این مال مصمه هم نباشد مال اون باشه. و این معناش این است که در این فاصله فرسی در سال 140-1304 وارد میراسهای ما شده در ان سال اما خیلی ضعیف و در میراسهایی نیست که بررسی شده باشه دو در کتاب سکونی آمده به نقل مرمون صدود در سکونی ایشون و من توضیح کافی ارز کردم کتاب سکونیی که از خصائصش اینه که در زمان خودش خیلی اهل کوفه و بزرگان ما ازش نقل نکردند تنها شخصیت بزرگی که دو نقل کردند نه تنها به شود ده درصد کم، ده درصد لازم سکون از این راه باشه. هر رو مغیره است. و اگر بزرگان ما از سکونی نقل نکنند، من این توضیح رو چند بار از کردم به صورت فهرست واقعی میخوام خود سکونی در کوفه که بوده ببینید مثال بیاورم از امام نقل میکنه که اصحاب دیگه، از دیگه ما نیست ها از ما مسافر نقل نمیکنه. ایک بعد از ایشان طبقه شاگرده ایشان بزرگانی ای که ما داریم که در این طبقه هستند، مثل ابن عبی عمر و یونس و بزن اونا ازش نهر نکردن دو کسی که از اون نهر کرده بیشتر نوفری که این فقط راویه خود روزه علمی نیست مثل این که بیشه چاپونه هست حفظ شفتی چاپونه بعد از نوفری هم کتاب باز بین اصحاب ما مشهور نشد خوب دفرگردی؟ البته یک نفر به نام ابراهیم و حاشم ازشون نهر بعد از ابراهیم و کتاب مشهور شد شهرت این کتاب بعد از ابراهیم و پس سکونی در وقت... وقت تازه یکی از راه های شهرت کتاب هم کلینیه کلینی هم تازه نهر نکرده طبعا شیخ سوسی هم نهر چون تابع کلینیه بیسته اما چون شیخ صدوق نرد کرده و قومیه و ارز کردیم این نسخه هم درسیدون نسخه قومی کتاب ازشمال کوفه است اما نسخه قومیه نسخه ای که ایرانی هاشم از نوفری نرد کرده این نسخه در قوم بوده مرموم صدوق از این نسخه نرد کرده و که این برای اتصال کافی نیست این مقدار سنگیان تا که من دیدم این حکم نرد نکردن ما دنبال شواهد بودیم یکی از شواهد اسماعیلی ها شیش امامی ها من کنارم حلق کردم اسماعیلی ها از سال ۱۹۸ سال این سی در مصر قبض الله کرد یا مسلحانه و تشکیل حکومت اصطلاحاً فاطمی ها یا اسماعیلی ها رو در مصر و سالهای حدود مثلا سی سال چل سال بعدش در سالهای مثلا سی سد و و مثلا قاضی القزات یا رئیس مثلا قضاوتشون رئیس قضاوتشون یه چنین کتابی هست که این به عنوان اساس کار فقه اسماعیلی اضافه شده دعائم الاسلام مرد فکری است مرد مولایی است مرد ادیبی است خیلی نکات فراوان در زندگیش هست بعضی‌ها شما صابر متحرز شدگی اینجا جایی تکاپو داشتین در کتاب دعائم الاسلام دعائم الاسلام صحبت هی از دادی به مسادرش قالب مسادرش مال ماست اما مسادر انفرادی هم داره چیزه داره که از خواب ما ازش نهده ایکیش هم همین کتاب و قضایو و سنم و لحکام سنم و و لحکام در اختیار ایش هم بوده از اون نهده کرده شمهش هم گذشتی من انا حال تکران ندارم نسخه شناسیش هم گذشت که نسخهی کتاب داشته چی بوده در کتاب دا این داره هم در اون نصحه مشهوری که ما داشتیم نقص نبود او توحلت اونجا هر بود او توسمت سمت ظاهر همینطور که ایشون در اینجا منویشته منویش مثل پرکندن مور با آب داغ مورو بکنن آب داق بیزن در بیاد نکشنده ازده بله. برده فلا تنگوز ففی حضیت رو کامل در این جرد با اون بعد نشا ما نقس من ها اینم تو اون روایت نداره ف به حساب داره فع النبته چه ایشون دینار اینیشم مخالفه چون اون روزی ها generate 33 330 دینار این 20 دینار خیلی تفاوت اسمیاره اونجا سورت سیو اجازه در اینجا نقش هم داره سمت هم داره دو تا عنوان داره اونجا فقط عنوان هر داره آیا می توانیم اصول به این نسخه پیدا بکنیم؟ خیلی مشکله اصولا یک نقطه کلی هم من خدمتون احس کردم تمر مراجعاتی که ما به کتاب دیگری بیشان در کتاب داعمال استان که سند ندارم مرسلم کتابی بینام علی ایزاه تازیگه ایشان چاپ کرده که نسخه ایمون حتی به بوده روز گرد مستشبین آلمانی داشتی نسخه شاب کردن نام علی ول در اونجا مسادره خاش بهتر حس بود خیلی مراج ای شما گ اون کتابی ای راه بر خوب بپستیم ایشه مقعیت به اصول تهویث نیست میدون چرا اصول ما که دنبال حتی بللوغ سیاسی از دو نظام حکووماتتی نه خیلی مقع زاوت عیو نیستن یا حالا کلی که تاور نیم این ای نسخشی اونجاشونطوره خیلی دنبال این فال نیسته این بزرگوار هم متاسفانه اینطوره. مثلا ایشون کتب رجعت به از محلمش بودن. بودن. زمان معله میشدن با هم میشدن هر بودن یک جان بودن با هم هم بودن نمیگه حدثنی محمد رسول الله شد نمیگم اینم برای ما هنوز مبهم خوب دقت بکنید چون خود حدیث اون زمان ذوابت داشت حتی اینقدر قری بود که حدثنا برای یه چیزی گفتن اخبرنا برای یه چیز گفتن عن بهنا برای یه چیزی گفتن مثلا حدثنا میگفت مثلا میگه حدثنا مثلا مثلا حد... قال حدثم یک خلان اما اگر قراءت بود این ایکی از نکات. اگر از بود میگفت قرهنا علا فلان قال حدث کن این حدثنا این خیلی دریفه اگر قراءت بود حدث کن ده. اگر سماع بود حدثنا میگفتن یعنی ذرافت های کار رو با یک دقیقت های واقعا از فیلم انصافا اهل سنت توی از بعد سالهای بیزی خیلی زحمت کشیدن انصاف وا داده خیلی دقت‌های زیادی کردن، باکه خب زیربناشون ضعیف بوده. و الا بعدیاش خیلی خیلی نکات فنی خوب خب اصحاب ما هم میراث است، خب اصحاب ما اینایی که خط و احتمالا احتمالاً به خاطر همین جهت متهمند. من همیشه عرض کردم تراث خط و ما، میراث‌های علمی خط و ما همیشه یک میخواد، می‌خواد، ولی ثقه هم باشه بحث مساوات نمی‌کنه. چون اون شبهه فن کنفل حدیث در همشون که خیلی مقید نمودن سماع باشه نسخه ها رو بررسی بکنن دقت بکنن این هر این شبه هست به همین وجهات تو بازاری نصخه بکنن به همون اتفاق بکنن این یک مسئله ما از اجایب کار نیشون هیچ جا حد دستان همزفه خود ساعت دارم بگه یه توزی ها بحث کردن بحث ها فراوانشون سابقا به هر حال ایشان این کتاب غذایا پیشش بوده از کردند این کتاب ایشون بین کلینی و بین صدوق رتفش این طوریه سی سر یا شستیده وقاتشه از تاریخی رتفش ما ها ماست حالا آیا واقعا در کتاب ایشان تونتر، تخلق، تسمت بوده من نمیتونم این کتاب که با اون موجود با ما فرق میکنه بعد در اون دوبامیش تا نبخه اشون دینار اینم میکنه نمیفهمم حالا این چه کارش بکنیم دفر پس ما اون که الان داریم تا اینجا بینه ما بین کلینی تا زمان امیر مومنه هنوز صافت نشده ما گیرون اینجاست داریم شواهد جمع میکنیم چه شواهد سلمی چه شواهد شیعی چه شواهد غیر من احس کردم از شواهد بسیار, بسیار بسیار خوب در مورد روایات و مطرون کتابی است که بنامه رزا معروفه بسیار کتاب خوبیه این کتاب کتاب علمی رایقی قطعاً هم مال حضرت رزا نیستن که احتمالاً، هست اما نگیسنده این هم قطعاً مرد مولداریست فوق الاده از این, این هم فریحه هم محدثه هم دقیق و نظر مخصوصاً اگر کتاب تکییر شرمگانی باشه که من اما آیا سرسان سر خیلی اصرار دارم احتمال هر شواهدیشون زده کنم بلند نیست به ساله نویشتنیشون در این جد و غذا یه از کتاب برند کتاب مشتر اتبار ازا یه حال کتاب انصافا زحمت کشیدن و که من کراون ارز کردم اگر اون کتاب هم نباشه روشش روش اون کتابه فرهنگ اون کتابه مثل که به شما الان توضیح المسایر بدن که اولش تو معرفش میگین مثلا توضیح اون برو جویز اگ طرز توضیح مسائل از راه آموزش نارو زمان ایشون در مسائل زو نبود مثلا مثل منتخب المسائل گرجدی نیست و منهج توضیح المسائل اگر او نباشه اون نباشه اون فرنگیه این کتاب اگر تکلیف نباشه روی فرهنگ تکلیفه و احتمال احتمالی که تکلیف باشه زیاده یکی از خصایص کتاب کتاب خصایص فراوانی داره سعی کرده مثلا چون زمان هیبت بوده برای زهرا بین مکتب قم و بغداد جنگ بکنه. این جنگ حساب خیلی نافع. حدود بعد سالهای 300 310، 310 و 350 سال حدی کتاب باشه. این کتاب به نظر من اون حد لازم در میراث های فکری ما حدیش نشده. نذاشته. بسیار کتاب تاثیرگذاری. نگاه نکنید با اینکه کتاب مار عزاد بزنه. بسیار تاثیرگذار است. بنیاد مقدار زیادی از اجماعی که در کوفه در بغداد در مشهد و اونجا همین کتابه. یا بعضی از آرایی که نه شده شاه و هیچ شاهدی ندارم برایش پیدا نمی‌کنم منشاءش کتاب. کتابه. کلاب به رضا از این کتاب اگر راست باشه اگر اون مطلب راست باشه که به بین دو مکتب قم و بغداد سعی کرده جمع بکنه این من یک شراره ارزش این کتاب به قم نزدیکتره. این کتاب الان مثلا فضل عبود به مکتب برخزاد نزدیک‌تره چون مؤلفش هم از مکتبیه اما این کتاب به مکتب قم نزدیک‌تره و تقی هم هست فضل اول به بحث کتابش نزدیک میشه نزد واقعا دقیقون نظرش مullah اما این کتاب خیلی منوال خیلی دقیقون نظر اضافه و البته خب یکی از میراث‌های ما این کتاب قطعاً نشون میده اگر مسئله گفتگو در روایت بوده و نه به مانع رسیده این دیگه ما قطعیه که عرصی داشته یعنی این کتاب در حد استظهار و رعی و نتیجه گیری نبوده اون چیزی که در این کتابه محسوسه این خیلی عردشته. در این هم اصلاح من نفهمیدم ای که خردستان توی جامل احادیث نیامده این چی از کلا تا اونجا هم که من میدارم تو مستلک نیامده شما استاد از جای میکنم شیخ مفید چرا شایم نمیدونم شایم تو بعضی نسخ نبودن توی این نسخ یه که ما داریم بدون اینکه اشاره بکنه توی بعضی نسخ هست یا نه این رو درمیکنیم عبارت فکاروزار کاملی بخونم بلو بسا کل عبارت فکاروزار دردیم فعلا صد در رأس ما اون مغلی ای ما ما این فعلا مثله دو مثله دو ما آب روی سر بخش فعلا مثله اولی این لحیه باشه فشوهت شعرو اینجا تعبیر جمع بشه پرکنده بشه مثلا بسوزه حتی لا یمبوت جمعه این کلمه جمعه از خواهی جدا بگه لا یمبوت بوده تو من کامله و این نبت بعضو او خدم به حساب ما نبرد. این مثلا تو روایات ما الان نیست الان که روایاتی که ما داریم که اینشانا میاده این نوبته نیست اما عبارت مرحوم شیخ توسی رو در نهای خوندی بود. چیز عجیبا. صدالنا ندید. اینجا نداره. نه دائم در دیه, دیه چیز داره، زمانه به حساب داره. چه داره؟ دائم داره. شیخ توسی ما روایت میخونیم چند واژه واژه تو شهر هست که ما رو داریم سردشم سهیه نه توشی نیست این بگیرین اما توی فقور رضا هست تو نهای شکل توسیم هست با این که نهای یعنی نصوص فکر کنید خیلی عجیبه نسل سهیی که خود ایشان داره توش نداره اما تو فقور رضایی که میگفتن خیلی تأثیر گذاره رو این جنب خیلی عجیبه مثل ما معتقدیم این اصل دیگه داشته روایت داشته وابع شع رو که بر اعتماد کرده شواهرشون نمی دقتر و جننی و شجاجه وس ال حساب ما و سطنا البته این عبارت رو که ایشون ورده این از خودش ظاهرم شجا ینی شبکه ینی زره مثل این زخم شدن وقتی که چی میگه ما بخواستی چیزی دیگر شیم مثلا سنگ به سر آدم به خون بیاد آشک نه شکستی که بگذاریم اون ترسه ما ترس داریم جر داریم چند جور داریم خراشت ندیگه اون که چیز دیگر, دیگر. شجاع شجه چیزه مثلا سنگ به سر آدم خوب خون بیاد خونه آمدن این شدن شجاعی این که میشه یعنی عشق عشق جمعه کسی که به حساب مثلا صوراتش شده على اشد جوان ناقص عرض رو بني قومه ناقصش اون يزيد بن عبدالملك نه يزيد بن عبدالملك اشديش هم جناب عمر بن عبد العزيز که ایشون شجاعونه و جميع اشجاج و رد على حساب ما وقفنا این که آب داغ بوده حالا اگر تنگ زد بهش یعنی که بشکنه خون بیاد میگه به همین حساب به مقداری که میاد یعنی ظاهرا به مقداری که تاثیر میگه تو مو چه مقدار مو از بینی بر رو اون حساب ظاهرا مراد این باشه, باشه میدونم های می خون... نه میخواد بگه نه حساب میشه در تاثیرش مو میخواد بگه ظاهرا چون بحث شجاع شد اینجا سر در و سسای مو در نمیورد این حکم شجاع ظاهرا یه نوع شخص لیکن این شجیه رو به لحاظ مو حساب میکنه اینم توی محصوص نداری این محصوص گرامازری اینه نداری بله ما وسطنا ها منعنو بره خده اینجا خده این بره البته خده اینی منم اشتباه نمیشتنی بره حالا و من حلقم رأسه و من حلق رأس رجله این خیلی هر به جای لحی رأسه و من حلقه حالا این چطور شده چه نسخه پیشی بشان بوده این مشکل کار ماست اون آب جوش داریم به بایدش این هست اون که حلقه داریم ترهیشه تو توی <تصفيق> تو سر این و من حلقه رأس رجلن فلنیم بود فعلایه معط و ملاحظه بفرمانید در اون سر نرسده از شیخ مفید سر دینار آه آی خویم به شیخ مفید اشکال گفتی این یه ۱۰۰ دینار از کجا آورد؟ لیکن داوود دریب، همراهت می‌کنه آی خویم. چون این ابرات ماست، نه آورده بوده دیو. و بیای فتحای شیخ مفید آماده از این کتاب فارس زگیر. تصویر گذاری کتاب. یه هزار میلیاردیناره؟ هزار دیناره؟ نه هزار حالا نه حلق همه خیلی عجیبی. معلوم میشه این حلقه لحیت روی که حلقه رأسن داشتیم. الان حلقه رأس اصلا به ما نرسیده. در روایات ما. و روایات اهل سنت حلقه رأس اصلا نرسیده. حلقه... من گفتنم حلقه لحیت ندارش. حواتم دارد. و این حلقه لحیت و لم یم بود فعله هدیه. خیلی عجیبی. در سر گفت که سردیناد. و ای این نبتت خوب ده پس بکنی فتالت بعد نباته ها فلاشه ای یک سر اون رواید داری یک سر با. و این نبتت فتالت فتالت بعد نباته خیلی عبارت عجیبی داره این خیلی به نظر من ذرافت به کار بوده چون ما در جواب نمی طالع میشه دراز بشه خب که شرط نیست اسکی میوازه لمی هم با و خودش برمیاد احسن خیلی عجیبه ایشون میخواد بگه که تالنت نیست که تالنت ترسی مراد اینه که بیش وقتی برگشت واقعا طبیعی باشه ای کاش این تالنت رو تو اون آب مغلی میگفت آب گفته گفت. خوب <تصفح> این رو اگر توی سر میگفت و آب جوش خیلید بود چون تو تراژدن غالبا بر میگرده. اگر این مطلب رو توی سر میگفت که آب جوش رو شریختن اونجا مطلب خوب خور بود خوب دقت کنید این فتحالت بعد نواسه ها یعنی معلوم میشه هیچ تاثیر نکرده طبعا ما این نداری، نداریم ایشون نواسه رو نواسه رو به این معنا. به این معنی که هیچ تأثیر نکنه یعنی چیه نگه تأثیر کرد و همون مقدار تأثیر باید کم بکنم از بیه پس معنیم شد که در کتاب شخور هم آمده و این مقدار که در کتاب شخور آمده که این تقریبا معاصر کلینیه از به نظر ما به لحاظ یکی از ریشه های اساسی قبول رواید همین عبادت شخور رزا اگر راست باشه که این کتاب که در سالهای 310 ها تعلیم شده سر کرده بین دو مکتب قوم و بغداد جمع بکنه اگر راست باشه بلکه ایدیدین جمع کرده یعنی صافا جمع کرده هم تو مکتب بغداد آمده تو کتاب کلینی و کتاب شیخ توسی آمده مسئله لحیه هم تو مکتب قوم آمده که مرحوم شیخ صدوح باشه فقط نکتهش اینه در این روایت در نواد گفته ای چی نیست لیکن تو روایتی که موجود بوده در نوادش گفته سلسدیه بل از این برای می داره اصل اینکه طرح مسئله لحیه و ازا ما خود ما احتمال میدیم که در این که از سال, از سال سی و چل و این مسئله به نحو واضحی در مسادر ما نیامده بعد از سالهای 310 به بعد در فقه آمده و در کتابهای کافی آمده دعایم دعایم هم مال سال سیده بعد از کافیه یعنی به عبارت اخرها از قرن چهار به بعد آمده این احتمال رو ما خود ما خیلی قرمی میدونیم که از تأثیرات کتاب تقرم رضا باشه. خور رضا مسئله لحیه رو مفرس یاده لیکن نمیدونیم چرا که خور رضا اگر بنابوده در رواب عمل بکنه این یکی کش عمل نکرده این قسمت دومش که نوته فیه سلسل این رو نداره این را که به بخش اول حالا طبق این مقدمات رو که با هم جمع بکنیم خود من چون معتبر اگر شعرتی باشه و بیا رو قبول بکنیم این شهرت ما همیشه از کردیم یه بحث است که بیشتر آیخوی اون بحثای کبروی دارم و دیگران یه بحث سغردیم تو شهرت بیاریم اصلا دریجا شهرت هست یا نه و اصولاً قبول شهرت به عنوان جابریه اینو تعبده آیا اینجا تعبده یا نه ما شاهدهش پیدا کردیم اینه که این مسئله در پهن شیعه حتی سنی ها نهر نکرد از ابتدای قبل چارم آمده از کردن از شیعه در زمان غیبت اینقدر زمان غیبت دارشون روی بازه صغرا مشکل بود که اصلا حل حیره اسمش بود دوران زمان حیره حیرت یعنی زمان غیبت و چون ارز کردن که مرمونوی حسین روه نوبختی اصلا خاندان نوبختی خاندان علمی هم منجم و مهندس و ریاضیدان تو این حسابا ها که تو این مایه هم ایشان تشریف داد برای نگهداری ی جمع شیعه یاد به توسل برایات الله من نمیگم دعوا دستش یک کتابی در فقه نوشته بشه دو مکتب قم و رو با هم جمع بکنه لااقل از تشتت شیعه جلوگیری بکنه کار خوبی هم بود به نظر ما این کتاب با این چه خیری الان روش حساب نمی کن خوب غله آدم لذا مرحوم صاحب کتاب خب عملا دیگه ازش خبری نیست نقل های کوچیکی ازش شده اما از زمان مجلسی کتاب انتشار پیدا میکنه. مثلا مردم صاحب هده قبول داره کتاب رو میگه چون ما خیلی از فتاوا بین چون طبیعه سابه میگه ما خیلی از فتاوا بین اصحاب دیده بودیم ریشه نداشت هر گشیم تو رویه نبود که غرزا کان را شده غرزا ها درست هم هست مفتر اون مفتر اجماعی بوده اصل اجماعات هم به بغداد برمی گرده بغداد هم که یک نحوه است ما بین مکتب قوم و مکتب بغداد مطلبش هم درسته این مطلبی مطلبیست درست لیکن تحضیلش ما با ایشان گیرداریم پس تا اونجا این شواهدی که ما, ما همه با هم ریختیم برای لحیه و تنهایی اثباتش خیلی مشکله و اثبات اینکه این, این مطلب زمان امیر ایشون در اون کتاب آمده الان برای ما مشکله این اولی دومی مثل همون آب داغی که یا قضایی بوده مرقی بوده آبوشی بوده خورشی بوده سر کسی است از کردید. این محلب دومی در کتاب کتاب اهل سنت به عنوانی که از قضایی ها به امیر مومنی نستداده شده فرقش هم اینه که اونی که ما در داریم این کتاب به امیر این به صورت یک ماده پانونی از آخو لفت اللحیه. اما این دومی قضیه خارجی است. آ ویروسه که خیلی ریخته شده، تقریباً 1 سال فرصت را بعد بکونیه دیا کرده. این دومی سلمی بن بشعهره یک گلش ابهام داره که این مراد چیه. این دومی الان در مصادر ما، در این مصادری که ما داریم، که الان در اختیار ماست، دهنیر المؤمنین رسماً نسبت داده نشده. دومی رسما به همین مهممی با یک قضیه نسبت داده نشده. بله، این دومی این جور آمده دومی با عنوان قضیه نه، با عنوان به اصطلاح حکم کلی آمده حالا میکنیم. اما با عنوان قضیه این در بعض از روایات ما همون سوال ارزش شده در تمامام ساده. ما معتقدیم اینکه که از راه های، ارزی روایت بوده مثلا به جای اینکه بگی آقا در کتاب قرعه در کتاب مثلا این آیه علامه بن تنبا مشغری اینجور نقل کرده نمی اومده دیگه که فلان رو چرا نمحثوش گاهی اوقات اینجوری این همون مطلب که اون نقل کرده نیا سوال میکنه یعنی امام چی میبرنه یعنی همون مطلبی که در کتاب امیر در روایت اهل سنت به عنوان قضیه از امیر بوده به عنوان سوال این روایتی که آمده با عنوان سؤال این در چند کتاب ما آمده هم کافی آمده هم تغییر آمده هم تحضیب آمده در چند کتاب ما آمده حالا ما به ترسیب قدرشون به ترسیب سنوات برویم اون نکات فرمی شو از در کتاب کافی این روایت رو انه ادتون من اصحابنا انسهل ابن زیاد برده رو میراسه سرمش خودش ضعیفه انه علیه ابن حبی در کتاب کافی علی ابن حدیقه در کتاب تحذیب تحذیب از کافی نمکه علی نه خالده هر دو بزر اوشنی ندارن مضافم به این که علی ابن حدیق هم شده ان بعض رجالی همه عبی عبدالله متاسفانه نصحه که در اختیار کلی بوده هم خود نصحه هم داره هم تریدش مشکل داره که ترید به قال قلطل عبی عبدالله ار یک خلول حمام. این تو اون قصه یدخول هممان تو اون قصه یه که سنیا نرکنن توش نیست فیاسوب با علیه صاحب و لحمان ماه انهار را این ماه انهار در اونجا است و اونجا مرقه مرقه نه آبوش مثل خورش آبوش فیمتع تو شعر رأسه جمع میشه و چاله میشه موی سرش اینجا سوال فقط موی سره فلاین بود قال علیه حدیه تو کاملا نه این اونجا داره عجل حسنه اینجا نداره اون اینجا دیگه عجل حسنه نداره در روایتی که سنیا داشتن طلحم شعرو نه گفت شعر رسه موی او را اما سوره کلی خلنی فیمتت شعر راسه لذا از اصحاب ما اومده گفتن شعر است به تنهایی یک وصف داره شعر لهی هم به تنهایی یک داره حالا یه مقدار میذ روایدی که از طریق ما اومده این اینو که سند ضعیفه به خاطر ابهام های کلی که داره الان نمیشه بهش اعتماد کرد اما مرحوم کلی مرحوم شفیع در کتاب فرعی اینطور نقل کرده و جعفر بن دشت که از اجلای اصحاب ماست سنبه ایشون هم به جعفر صحیحه ان هشام ابن که این از اجلاست ان سلیمان ابن خالب. این شخصیت اجتماعی هم بوده سنیام بهش احترام وقال زیدی مذهب بوده برشیه برمیارد امام سالب قال قلطل عبی عبدالله قال قلطل همون سؤال محرمه هم. رجل صد به ما انهارم علا رأس رجله تن تعت شعرو نگفت سر اطلاق ببینید البته این سندی که شما دارن این سند صحیح سنر صحیح سنر صحیح ولی چون جعفر, جعفر هم باشیم صاحب کتاب اشن از سوف و جعفر باشه چون روایت باشه طریقش روایت بشه فلا یک گفتو ابدا قال علیه الصییه هند وایچ آبهار هست فرذهب شعرو حالا آیه سلیت جلو بوده فقط موی سرش رفتی یا تمام بدن موش رفته و زهر ده. من یادم رفتی نقطه شما دیگه وقتا شده. ببینید در این که ما تا حالا خوندیم و میخونیم و اینشالا میاد هیچ کدوم فرق به این و خطا نرگشتن من الان تو زهرم بخونم این حفظ مواثبه در اون عبارتی که در دائم براتون خوندیم که این نبت فه اشون دینات کلام داره حالا فلخطه و فلاند القصاص تا اونجایی که ما الان خبازه فقط تو دعایم آمده و به ذهن من عبارت مال پتبای خود دعایمه اصلا به روایت میخوره. تو کل روایت ما و اهل سنت تصریح در قصاص به خطابه هم نشده این یادم رفت بگم حالا شما ملازم پس این روایدی که الان خوندی به طریق مرمون شهر صدوب این صحیح و مخصرش هم اگه کتاب جعفر باشه کتاب خودش خودیست خودیس خودشون هم مرد بزرگ باریس. در این روایت یک نکات زریفی هست.